افسانه ملک جمشید نوشته محمد علی نقیب الممالک ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای های ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده ناهید شافه. سلام بر همراهان جان کانال هزار افسان امروز با آخرین قسمت از داستان زیبا و هیجان انگیز ملک جمشید همراهتون هستیم. امید که از این داستان لذت و بهره کافی برده باشید و لحظات شیرینی رو تجربه کرده باشید. و اما در قسمت قبل تا اونجایی گفتیم که ملک جمشید بالاخره تلسم عاصف رو شکست و تمام کسانی رو که در اون تلسم گرفتار بودن نجات داد. از جمله اون آهوهایی که در باغ سوسن جادو بودند و همشون امیرزاده و پادشاهزاده بودند. همچنین شهرراشوب پری، مادر جهان آرای و ملک داراب و دختر پادشاهزاده هندوستان به نام آزرچهر. و از همه مهمتر بالاخره ماه عالمگیر، اون یار و وادارش رو تونست نجات بده و بعد از اون هم همگی به قصر شهربال شاه پری رفتند و در اونجا جهان آرای پری مجلس گرمی بپا کرد و همه با یارهای خودشون بودند اما خودش تنها در گوشه نشسته بود و حسرت می‌خورد که ملک جمشید از شهبالشاه خواست که نردیوی رو بفرسته و ملک فریدون رو بیاره. القصه ملک فریدون هم اومد و همه در قصر به شادی پرداختن. و بعد هم شهبالشاه خودش به بارگاهش رفت و به اونها گفت شما مشغول شادی باشید و فقط روزی دو ساعت هم به بارگاه بیانید تا امیران و وزیران شما رو ببینند و اینک ادامه ماجرا بعد از رفتن شخبال شاه ابتدا ملک جمشید تمام سرگذاشت خودش رو از ابتدا تا انتها تعریف کرد ملک فریدون هم از درد فراغ و اشتیاق خودش صحبت کرد. اون روز و اون شب رو به این ترتیب گذروندند و روز دیگه همگی به بارگاه رفتند و اهل شهر دسته دسته به تماشا می اومدن تا دو ساعت. بعد از اون دوباره به باغ جهان آرای پری رفتن او هم زنان مهمانش رو حسابی تحویل گرفته بود و لباسها و جواهرالات زیبا به اونها پوشونده بود. و تا یک هفته هم هرگاه که مردان از بارگاه می از همه پذیرایی میکرد و جشن و سرور برپا می کرد. و اما روز هشتم ملک جمشید به شهبالشاه گفت قربانتان گردم. من مدت یک ساله که از وطن و پدر و مادرم دور موندم و دائم گرفتار نردیو ها و جادوگرا بودم. پدر و مادرم نی دونن که اصلا من زنده هستم یا نه. خواضا دارم منو مرخص کنید تا به دیدار پدر و مادرم برم و چون که میترسم بمیرم و آرزوی دیدار اونها به دلم بمونه شهبالشاه گفت چرا به این زودی میخوای بری هنوز ولایت ما رو خوب ندیدی من میخوام چل شبان روز عروسی براتون بگیرم بعد از اون اگه خواستین برین چشمای ملک جمشید اشکی شد و گفت شوق دیدار پدر اونقدر بیتابم کرده که اگه بیشتر اینجا بمونم هلاک میشم. خواهش میکنم منو مرخص کنید تا برم و پدر و مادرمو ببینم. چون اونا هم آرزو دارن که خودشون برای من عروسی بگیرن و من در شهر خودمون عروسی میکنم. شما هم هر وقت بخواهید منو احضار کنید و به خدمتتون میرسم. شهبال شاه چون بیتابی ملک جمشید رو دید گفت ای فرزندم. اجازه میدی عروسی ملک فریدون رو اینجا برپا کنیم شاهزاده گفت بهتره که اونم مرخص کنین تا در ولایت خودش عروسی کنه که پدر و مادرش آرزو دارن بله دوستان اون شب همگی آماده رفتن شدند و جهان آرای پری هم وسایل خودش رو جمع کرد و با مادر و کنیزان خودش خداحافظی کرد و فردای اون روز شهبالشا تخت و نردیوها رو آماده کرده بود و به اونها گفت هر وقت میل دارید میتونید برید فقط به شرطی که به ما هم سری بزنید القصه اون شش نفر یعنی ملک دارا و آذرچهر ملک فریدون و جهان آرای و ملک جمشید و ماه عالمگیر سوار بر تخت شدند و نردیوها اونا رو به آسمون بردند و روز بعد نزدیکی های ظهر اونها رو بر چمنزاری گذاشتند و گفتند این مکان به شهر سرندیب نزدیکه. ملکداراب هم گفت درسته از اینجا تا شهر سرندیب فقط دو فرسنگه. بعد هم نامهی به پدرش نوشت و در همون حوالی یه نفر رو پیدا کرد و نامه رو به اون داد و گفت این رو ببر به بارگاه و به دست پادشاه بده و بگو که پسرت ملکداراب داراب برستاده. و وقتی که نامه به دست ملک بحمن شاه رسید اون رو باز کرد و دید چنین نوشته پدرجان بدون که ملک جمشید وقتی که ما رو از تلسم آصف نجات داد همراه خودش به شهر پریزادها برد چند روزی هم اونجا بودیم و حالا هم در بلند چمنزار در دو فرسنگی شهر هستیم. سه دختر و دو پسر دیگه هم از پادشاهان همراه ما هستند. دیگه اختیار با شماست. ملک بحمدشا از خوشحالی فریادی کشید و کیسه طلایی تلایی به آورنده نامداد و گفت ای وزیر و امیرها آگاه باشید که پادشاهزاده ی شهر زیرباد ملک جمشید که در این ولایت دیو رو کشت و مردم رو آسوده خاطر کرد و تلسم رو هم شکست و ملک داراب رو نجات داد حالا اومده در دو فرسخی شهر. ببین که جارچی ها جار بکشند و مردم را خبر کنند. که شهر را آزین ببندند و از او استقبال کنند که حق بزرگی به گردن من و همه اهالی این شهر داره. بعد هم از جاش بلند شد و بر اسبش سوار شد. وزیر و امیرها هم سوار شدند و به استقبال مهمانهای عزیز رفتند. از دیدن هم خیلی خوشحال شدن اونقدر که زبون دیگه نمیتونه این شور و شادی رو وصف کنه. بعد هم همگی به بارگاه رفتند و شب هم در حرم خانه میهمانی پا کردند و جشنه ها گرفتند و شادیک ها کردند. و روز دیگه هم دوباره همگی در بارگاه جمع شدند و شاهزاده ملک جمشید سرگذشت خودش را از اول تا آخر برای ملک وهمنشاه و امیرها تعریف کرد و بعد هم گفت چون من با خدای خودم عهد کردم که یارانم زودتر از خودم به وصال هاشون برسن و بعد خودم به بسال برسم تقاضا میکنم کنم همونطور که شهر رو آزین بستید و مردم هم مشغول ایش و اشرت هستن فرمان دهید که عروسی ملک دارا فرزندتون رو با آزرچهر هم بپا کنن. ملک بحمن شاه هم قبول کرد. البته ملک جمشید خواست که خرج عروسی هم با او باشه و از ثروتی که از تلسم آصف آورده بودن خرج کنند و هر چقدر هم که ملک بهمنشاه خواست قبول نکنه شاهزاده قبول نکرد و التماس کرد و چون بهمنشاه دید که اگه قبول نکنه شاهزاده دلخور میشه قبول کرد و از اندوخته های تلسم هفت شبانه روز عروسی براه انداختن و به این ترتیب دو دلداده اول به هم رسیدن بعد از اون ملک جمشید به ملک بهمن شاه گفت ای پادشا الحمدلله که فرزندت رو داماد کردی و آرزوت برآورده شد حالا تقاضا دارم ما رو هم مرخص کنی که به خدمت والدینمون برسیم که دیر زمانی است از ما بیخبرن وحمن شاه گفت ای فرزند حق با شماست ولی سه روز به من مهلت بدید و بعد برید شاهزاده قبول کرد و سه روز گذشت و روز چهارم ملک جمشید وارد بارگاه شد و دید ملک بحمن شاه و ملک دارا و امیران همه لباس سفر پوشیدند و آماده حرکت با شاهزاده هستند پس همگی بر از پا سوار شدند و به سمت دروازه شهر رفتند. در میان راه هم تمام مردمشان داغوی شاهزاده بودند و در کنار راه صف کشیده بودند تا اینکه به دروازه شهر رسیدند و از اون خارج شدند. نیم فرسخی که رفتند، شاهزاده لشکر بزرگی را دید که همگی آماده سفر هستند و چادرهایی را هم برپا کرده بودند. ملک بهمنشاه دست شاهزاده رو گرفت و با او وارد چادر اول شد که ماه عالمگیر و جهان آرایپری با چندین کنیز زیبارو در اونجا حاضر بودند بعد هم به چادر دیگه ای رفتند و شاهزاده دید که گاف صندوق های زیادی که درهای اونها مهر بود در اونجا بود محمد شا اون وقت گفت ای فرزند این ها و این دولت تلسم آسف که آورده ای و این هم دوازده هزار لشکر و سراپرده همه از آن توست چون سه روز به من مهلت بیشتر ندادی نتونستم از این پیشتر تدارک ببینم شاهزاده گفت ای پدر من لشکر لازم ندارم اینا به چه کارم میان ولی با این حال از لطف شما بسیار ممنونم دو روزی رو هم در همون همونجا موندند و به خوشی پرداختند و بعد از اون هم وقت خداحافظی رسید شاهزاده ملک جمشید دست بهمنشاه را بوسید و با هم خداحافظی کردند ملک فریدون هم از ملک بهمنشاه تشکر زیادی کرد و القصه همگی خداحافظی کردند ملک جمشید و ملک فریدون با اون همه لشکر و مال و منال زیاد به سمت شهر آکره بهرا افتادند تا اینکه به هفت منزلی شهر رسیدند که ناگاهان چشم شاهزاده به جمعیت زیادی افتاد از مرد و زن که همه سرگردون و حیرون و پریشون در بیابان پراکنده بودند و گریه کردند. شاهزاده به طرف اونها رفت و پرسید راست بگین شما مردم کدوم ولایتید کجا میرید چرا گریه میکنید اون جمعیت که شاهزاده رو دیدند ترسیدند و شیون شیونکناند خودشون رو به قدمهای او انداختند و دامنش رو گرفتند و گفتند ای جهان پهلوان رو مکش شاهزاده دلش زوخت و گفت من دوست شما هستم دوست نیستم باهتون کاری ندارم در این زمان ملک فریدون هم از راه رسید و چون جمع او رو دیدن شیون دور و رو اون رو گرفتن و گفتند ای شاهزاده به فریادمون بره روزی که در بارگاه دستی پیدا شد و تو رو بود و به آسمون بلند کرد و این خبر به گوش پدرت ملک نقمان شاه رسید اونقدر غمگین شد که بر سر و روی خود سد. بعد هم به حرم سرا رفت و لباس سیاه پوشید و دیگه بیرون هر هرچه وزیر و امیران رفتند و خواهش کردند بیا به بارگاه و بداد مردم برست که پادشاه لازم دارن و اگر بی اعتنائی کنی ولایت خراب و مردم تباه میشن اون قبول نکرد و گفت من دو فرزند داشتم که هر دو رو دیو برد و نمیدونم به سرشون چی اومده حالا که من پیر شدم پادشاهی بی فرزند رو نمیخوام شما هر کی رو میخواید پادشاه کنین هرچقدر هم که وزیر و امیران التماس کردند بی فایده بودن و همه هم فهمیدن که نعمانشاه شاه به حرم رفته و دیگه پادشاهی نمی کنه. بعد از چند روز هم خبر اومد که سام جزیره نشین با چهل هزار لشکر حرکت کرده و به این طرف میاد. ما اول باور نکردیم تا اینکه چند روز پیش ای از او رسید به دست نعمانشاه که یا دخترت ماه عالمگیر رو به من بده و دست بقیه اهل و عیالت رو بگیر و از این ولایت برو تا من پادشاه شم یا اینکه که جنگ شو که من رسیدم نومان شاه هم به ناچار سی هزار سپاه جمع کرد و به بیرون شهر رفت که سام جزیر نشین هم با چهل هزار لشکر رسید در برابر هم قرار گرفتند و جنگ بینشون در چندین نفر از امیران نومنشا کشته شدند و ما هم که دیدیم نومنشا شکست خواهد خورد خانواده هامونو برداشتیم و از شهر فرار کردیم و سر به بیابان گذاشتیم تا حالا که به شما رسیدیم و حالا به نظر بهتره که همراه شما فرار کنیم که اگر سام به ما برسه به جهت اون که خیلی شجاعه همه ما کشته میشیم. شاهزاده که این حرف ها رو شنید جهان پیش چشمش تیره و تار شد و به ملک فریدون نگاه کردید هم که اونم صورتش پریده و رنگ از روخش رفته. بنابراین گفت ای برادر تو رو چه میشه داری به چی فکر میکنی؟ مرک فریدون گفت برادر تو سام رو ندیدی ولی من اونو میشناسم خیلی شجاع و دلیره و کسی چاره اون ناپاک رو نمیتونه بکنه یقین دارم تا حالا پدر من رو هم کشته و شهر رو گرفته و پادشاه شده اگه ما بریم به دست اون کشته میشیم بهتره که به شهر سرندی برگردیم و جهان آرای پری رو پیش پدر شاه بفرستیم تا سپاه دیب و پریزاد رو برداره و بیاره و ما هم سپاه جمع کنیم و همگی با هم بریم اون رو از میان برداریم شاهزاده نامدار ما خندید و گفت سام کیه من با چه روی به شهر سرندی برگردم که همه مردم و پادشاه بگن ملک جمشید نردیب ها رو کشت، تلسمه ها رو شکست و همه جا سکه مردی و مردانگی به نام خودش زد ولی آخر سر از سام جرزیر نشین ترسید و فرار کرد و برگشت اگر یقین هم داشته باشم که کشته میشم بازم بر نمیگردم و میرم با اون ناپاک جنگ میکنم و نمیترسم بعد هم گفت ای برادر تو با دخترها از عقب من بیا من با سپاه میرم و جنگ میکنم اگر کشته شدم تو به شهر پریزات ها نزد شهبال شاه برو و بعد هم بی معطلی با همه خداحافظی کرد و رو به سپاه کرد و گفت من میخوام با سام جزیره نشین جنگ کنم آیا شما با من میاییم که کمک باشید یا تنها برم؟ سپاهیان همه یک دل گفتن تا جان در بدن داریم دست از تو بر نمی داریم و جونمون رو فدای تو خواهیم کرد این شد که بلا فاصله شاهزاده و سپاهیان رفتند. و اما وقتی ماه عالمگیر خبر رو شنید به برادر گفت ای وای تو چرا نرفتی و اونو تنها گذاشتی؟ ملک فریدون هم گفت به خاطر شما زنها نرفتم. اگر من میرفتم شما چه میکردید؟ میترسم شما رو بذارم و برم و شما به دست دشمن گرفتار بشین. ماه عالمگیر گفت ای برادر دو دست لباس مردانه حاضر کن تا بگویم چه کنی ملک فریدون هم دو دست لباس مردانه حاضر کرد و ماه آلمگیر و جهان آرای پری پوشیدند و نقاب به صورتشون زدند و هر دو سوار اسب شدند و ملک فریدون هم مال و انبال رو به دست قلامان سپرد و همراه دختران سوار بر اسب شد و با هم در راه افتادند. و ما از اون طرف نعمان شاه وقتی در برابر سام جزیره نشین قرار گرفت شش روز به جنگ با او پردا و هر روز هم چند نفر از امیران و فرماندهانش را از دست داد و حسابی ارسه بر او تنگ شده بود شب هفتم سام جزیرر نشین نامه ای به اون نوشت که امشب اهل ایالت رو بردار و به هر جا میخواهی برو باهت کاری ندارم. و اگر امشب نرفتی فردا اول تو رو میکشم و بعد هم زن و بچت رو به اسیری میبرم. شاه هم نامه را پاره کرد و جواب داد هر چی از دستت برمیاد اگر کوتاهی کنی نامرد رو روزگاری. سام از شنیدن این پاسو خیلی عصبانی شد و فرمان داد تبل جنگ رو به صدا در بیارد. نومانشاه هم که صدای تبل رو شنید فرمان داد و جواب دادند. و اما اون شب امیران و نومانشاه به شدت مسترب بودند. نومانشاه پیوسته دعا می کرد و یارب یارب می گفت که خدایا اگه به من رحم نمی به زن و بچه امرم کن که به دست سپاه دشمن اسیر نشد. القصه اون شب صبح شد و دولشگر در برابر هم سفارایی کردن و در این زمان خود سام به وسط میدان رفت و شروع به رجزخانی کرد و هماورد طلبی. از امیران ملک نومان شاه هم یک نفر داب طلب شد و به وسط میران رفت و با یک دیگه به جنگ تن به تن پرداختند. ولی بعد از مدت کمی امیر نومانشا به دست سام کشته شد و باز مرد دیگه ای رو تنبید. نشون به اون نشون تا دوازده امیر رفتند و کشته شدند و عرصه بر سپاه نومانشا هی سابی تنگ شده بود. کسی هم دیگه جرعت نداشت به وسط میدون بره. سام قاه قاه خندید و گفت ای پادشاه با همین مردات میخواستی با من بجنگی حالا که کسی نیست به میدون بیاد من خودم با سپاهم به لشکر تو می زنم و آماده ی حرکت شده بودم که ناگهان از یک طرف بیابان گرد و خاک زیادی به هوا رفت و ناگهان لشکر بزرگی آشکار شد که همون لشکر ملک جمشید قصه ما بود که به موقع رسیده بود القصه خود ملک جمشید مثل برق خودش رو به وسط میدان انداخت و در برابر سام قرار گرفت سام تا چشمشم ملک جمشید افتاد نعرهای زد و گفت ای کودک تو چرا به میدون اومدی شاید نعمانشاه تو رو فرستاده از من مهلت بگیره و من چون ازت خوشم میاد امروز بهتون مهلت میدم ملک جمشیت هم قاه قاه خندید و گفت: ای ناپاک تو دیگه کی هستی که ازت مهلت بخوام. حریف جنگ تو فقط خودم هم که اومدم پدرت رو درآورم و مادرت رو به ازت بنشونم. سام از این حرف اونقدر عصبانی شد که گفت: جوان اگه تو رو زنده بذارم از نامردان روزگار هستم و نیزه خودش رو به طرف شاه زده انداخ. هر دو به نیزه بازی مشغول شدند این میزد اون میزد تا اینکه شمشیرها رو درآوردند و هر دو با شمشیر به هم حمله میکردند. سام ناپاک دید که حریف خیلی شجاعه و از ترس جونش سپر را رو روی سر خودش گرفته بود و در فکر حمله بود که ناغهان از یک طرف دشت گرد و قباری بلند شد و ملک فریدون و ماه عالمگیر و جهان آرای پری از میان اون قبار بیرون اومدن و در یک طرف میدان به تماشا ایستادند. چند نفر دویدند و خبر رو به نعمان شاه دادند که پسرت ملک فریدون و دو دختر نقابدار اومدند. نومن شاه خیلی خوشحال شد و ملک جمشید هم که اومدن اونها رو دیده بود در غیرتش به جوش اومد و فریادی زد که ای ناپاک بگیر از دست من که رسیدم. سام هم که حواسش پرت شده بود تا خواست چارهی کنه شمشیر شاهزاده امانش نداد و اونو به خاک حلاکت رسوند. در این لحظه دلشکر به هم ریخت و با هم به جنگ پرداختند اما لشکر نعمانشاه و ملک جمشید پیروز میدان شدند و جنگ به پایان رسید بعد هم وزیر و امیران نعمانشاه ملک جمشید را بر سر دست گرفتند و اون رو در برابر پادشاه بر زمین گذاشتند ملک جمشید هم دست و پای پادشاه رو بوسید و ملک فریدون هم از راه رسید و خودش رو به پاهای پدر انداخت و پاهای اون رو بوسید. اون هم صورت فرزندش رو بوسید و بعد هم همگی بر برعص سوار شدند و به شهر برگشتند. جشنه گرفتند از این پیروزی و از این به پایان رسیدن درد و فراغ و رنج. در این میان ملک جمشید هم به نومان گفت اکنون که مردم در شادی هستند خوبه که اجازه بدین عروسی ملک فریدون و جهان آرای پری هم برگزار بشه. چرا که من عهد کردم ابتدا اونو به وصل یارش برسونم. نومان هم گفت اختیار همه چی با تویه. ملک جمشید گفت تقاضا دارم که اجازه بدید اندوخته ای رو که از تلسم آسف آوردم رو صرف عروسی کنی نومان شاه قبول کرد و بعد هم گفت ای فرزاد دخترم ماه عالمگیر رو هم به کنیزی به تو بخشیدم می برای تو هم عروسی برپا کنم شاهزاده گفت اجازه بدید که فقط ملک بریدون عروسی کنه و منو مرخص کنید تا به شهرم زیرباد برم و در خدمت پدرم عروسی کنم که اون هم آرزو داره شاه هم پذیرفت و عروسی ملک فریدون و جهان آرای پری رو به راه انداختند و هفت شبانه روز جشن و پایکوبی بود در آخر هم ملک جمشید دست ملک فریدون رو در دست جهان آرای پری گذاشت و گفت برادر این امانت که آرزو داشتی به دستت سپردم و بعد هم ملک جمشید از مرافتن به نزد پدر و وطنش رو کرد اما پادشاهی یک هفته مهلت خواست تا تدارکات رفتن شاهزاده رو آماده کنه که شامل سی هزار سپاه بود و بعد هم گفت ای فرزند حالا اگه سلاح میدونی لشکر سرندیب رو مرخص کن که به شهر خودشون برند ملک شمشید هم قبول کرد و به همه اونها هدیه های زیادی داد و اونا رو به دیار خودشون فرستاد و البته که نومان شاه هم تمام سروتهایی رو که از حمام بلور باقی مونده بود به شاهزاده داد و دست ماه عالمگیر رو هم در دست او گذاشت و دعای خیر براشون کرد. و هنگام رفتنشون هم تا سفرسنگی اونها رو همراهی کرد و در آخر شاهزاده اونها رو قسم داد که برگردند و بیشتر از اون شرمندش نکنند. اونها هم بعد از خداحافظی برگشتند. ملک جمشید نامه هم برای پدرش نوشت و به دست غلامی داد و گفت این رو به شهر زیرباد ببر و به دست پدرم بده. قلام نامه رو برد و ملک جمشید هم با سی هزار سپاه و اون همه ثروت و عروسش روز دیگه حرکت کردند به سمت شهر زیرباد و اما ملک همایون شا که دو سال بود در عزای پسرش بود و همه روزه در رنج و عذاب بود وقتی غلام نامه رو به دستش داد و که به بارگاهش اومد و از ملک جمشید خبر آورد اول شروع به های های گریه کردن کرد بعد هم شکر خدا رو به جا آورد و نامه رو باز کرد دید که ملک جمشید فرزند نازنینش نوشته پدر بزرگوارم بدون و آگاه باش که بعد از تحمل سختی های زیاد و شکستن تلسمای سنگین و کشتن نردیب ها اکنون با لشکر بزرگ و ثروت زیادی به خدمت میرسم و البته دختر ملک نعمان شاه هم همراه منه و دیگه اختیار با شماست. اومایون شاه نامه را که خوند اون رو به دست وزیر داد که بلند بخونه و همه امیران هم شنیدند و خوشحال شدند و بعد هم سوارانی را آماده کردند تا به همراه وزیر به استقبال برند. اونها رفتند و در سفر شهر به شاهزاده رسیدند. شاهزاده از اونها استقبال بین نزیدی کرد و فردای اون روز هم همگی به سوی شهر حرکت کردند. از اون طرف به دستور شاه شهر را آزین بستند و همگی در جشن و پایکوبی بودند و منتظر ورود شاهزاده و لشکرش. بله دوستان شاهزاده آنچنان که عهد کرده بود با خودش که با دب دب و کب, کب به وطن خودش برگرده دقیقا همون شد. و بعد از دیدار پدر و دیده های اولیه تمام داستان خودش را برای همه تعریف کرد. همه امیران و اهل بارگاه و مردم بر شجاعت و مردانگی او آفرین گفتند. بعد از اون هم بساط عروسی به پا شد و ملک جمشید و ماه عالمگیر دست در دست هم به زیر سقفی رفتند و البته که همایون شاه هم تاج پادشاهی بر سر ملک جمشید گذاشت و خودش از پادشاهی کناره گرفت و تا پایان اون به عبادت خدا پرداخت ملک جمشید هم بعد از پادشاهی به وزیر و تمام امیران هدیه های فراوان داد و مالیات هفت سال رو هم به تمام رعیت و مردم بخشید و به عدل و داد و رعیت پروری مشغول شد چندین بار هم با ماه عالمگیر به میهمانی دوستان وفادارشون رفتند از جمله به میهمانی ملک فریدون و ملک داراب و شحبالشاه حلق به خوبی خوشی زندگی کردند تا زمانی که سپاه مرگ شهر وجودشون رو تسقیر کرد. ولی دوستان کتاب تلسم آصف و تلسم حمام بلور نوشته های محمد علی نقیب الممالک در ماه رمزان 1292 هجری قمری به پایان رسید امید که از این داستان لذت و بهره کافی برده باشید و سپاس و تشکر فراوان از همراهی شما تا انتهای داستان در پناه نور و عشق الهی باشید آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهر را زفر کنین؟